صحيفه معرفت شرح دعای هفتم هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه اول اسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين و الله علی نبینا و آله تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فلعرزین یکی از منابع مهم معرفتی برای ما مسلمین به ویژه شیعیان کتاب عظیم القدر صحیفه سجادیه از مولامون امام علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیه السلام است در این سلسله مباحث ان الله به لطف الهی بناس درس رو از این کتاب صحیفه به گفت شنود بپردازیم در رابطه با راه انسان شدن و طریق زندگی انسانی از دید این کتاب عظیم اسلامی و شیعی ولی ابتداعا لازم میدونم در یک دو جلسه مقدمه ای ارز کنم از قرآن کریم هم در رابطه با بحث ترخ شده کمک بگیرم انگاه وارد برخی مباحث از برخی عدیه صحیفه سجادیه بشیم ما میدونیم که همه انسان ها با توجه به تمامی تفاوت که در شعون مختلف زندگی دارن اما این آرزو و خواسته را با هم مشترکن که دوست می‌دارن دارن انسان ها زندگی سالم انسانی داشته باشن از نظر فردی، خانوادگی، اجتماعی، یک زندگی مورد پسند و سالمی رو در پیش رو بگیرند. اما واقعیت امر این است که همه انسان ها اینگونه زندگی نمی کنن. برخی انسان ها چه در مرحله فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی نابسامانی هایی و باعث اذیت و آزار دیگران هم می شوند اونگونه که باید خود از زندگی بهره نمی برن، و مانع بهره بردن دیگران از زندگی می شوند. ما به عنوان انسان آیا جا ندارد به مطالعه و تحقیق در این زمینه بپردازیم ببینیم چه عاملی باعث می شود که برخی انسان زندگیشون سالم ارزنده هم برای خودشون مفید هم به دیگران نف برسانند. اما برخی دیگر به عکس هم خود ضرر میکنند هم به دیگران ضرر میرسانند این عامل را اگر بخوایم ریشه یابی کنیم هم در قرآن کریم هم در سیره معصومین علیهم السلام مهمترین را حالات نفسانی انسان ها معرفی میکنند بشر به جهت سرمایه عظیم القدری به نام نفس که دارد حالاتی که در این نفسش ایجاد میشه این نفس اگر حالت صحیح و سالمی داشت مصدر و منشأ افعال سالم میشه ولی اگر حالات نفس از سلامتی خارج شد نفس بیمار شد افعال و آثاری که از این نفس برود میکند قطعا اون هم ناسالم و بیمارگونه خواهد بود اگر بخوام در قالب مثال ارز کنم شما از نظر جسمی نگاه کنید افعالی که از بدن ما سر می زند. من به وسیله زبانم مطالب ذهنیم رو در قالب الفاظ بیان می کنم به وسیله دستم حرکاتی رو صورت می دم رو بر می دارم، یا اشیایی رو در سر جاش می دارم. به وسیله پا گام برداشتن و حرکت کردن اگر بدنم بیمار باشه در اثر این نابسامانی بدنی ممکن است زبانم توان حرکت دقیق و ایجاد الفاظ و کلمات صحیح رو نداشته باشه کسی که به سخنان من گوش میده متوجه می شود که من در نحوه صحبت کردن از نظر زبان یا هنجره مشکل دارم یا اگر دستم رو میخوام حرکت بدم وقتی بیمارم دستم در اثر بیماری می لرزه و یک کتابی رو میخوام از سر جاش بردارم از دستم میافته یا شیعی رو میخوام به کسی بدم دستم می لرزه و رها میشه این نشانه نوعی بیماری جسمی است چون جسم بیمار است این آثاری که مربوط به جسم است اون هم بیمارگونه و ناسالم خودش رو نشون میده ولی قسمت عمده حقیقت وجود انسان نفس انسانه که جسمم به عنوان ابزاری در اختیار نفس است انگونه که نفس تصمیم میگیرد انتخاب میکند این بدن و جسم را به عنوان ابزار در اختیار اون بدن وادار به حرکت میکنه حالا اگر نفس بیمار شد مسلما فرمان نفس بیمار فرمان بیمارگونه است این فرمان بیمارگونه افعال و آثار سالم نمیتواند داشته باشد بر این مبنا هم در قرآن کریم تأکید بسیاری شده است که به اصلاح نفس بپردازید هم در روایات معصومین علیهم السلام اشارات فراوانی وجود دارد که اگر به اصلاح نفس نپرداختید بقیه امور را اگر چه به او حتی توجه هم بکنید چه بسا به جای اینکه مفید شود مخرب هم گردد بر این مبنا تأکید بسیاری کردند مثلا در قرآن کریم به ما سفارش بسیاری میکند و این توجه را میبخشد که اگر انبیا آمدند تعلیم میدهند حکمت میآموزند تلاوت آیات الهی میکنن، ولی مقدم بر همه اینها اصل تزکیه را برای ما مطرح میکنند و اگر در قرآن کریم نفس انسان را عظیم میشمارد، تا اون حد که نه قسم میخوره قرآن تا به ارزش و اهمیت نفس ما رو واقف کنه ولی اونجا که سخن از نفس به میان میآید و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افله من زکاها و قد خواب من دساها رستگاری سعادتمندی فلاح انسانه ها را منوط به تذکیه نفس میداند یعنی اگر بناس نفس من حالت بیمارگونه پیدا کند تا من به اصلاح این نفس نپردازم منشأ و مصدر عملم را درست قرار ندهم طبیعتا افعال و حرکاتی که به وسیله این نفس از طریق جسم من بناس بروز کند بروز نخواهد کرد اگر زبان سالم باشد از نظر جسمی مشکل نداره قشنگ میتواند در دهان من حرکت کند هنجره سالم است میتواند به کمک تارهای صوتی و نحوه حرکت زبان الفاظ و کلمات را به خوبی ادا کند ولی نفس بیمار است به این معنا که بر مبنای حسادت بر مبنای کینتوزی بر مبنای منیت و قرور زبان را به سخن در میآورد. کلماتی که از این دهان و زبان و هنجر خارج می شود آیا می تواند کلمات سالمی باشد؟ بدین جهت به ما گفتن قبل از هر چیز توجه کنید به سلامتی و اصلاح نفس از امام کاظم علیه السلام و این روایت در منابع روایی ما نقل شده که اون بزرگوار فرمودن الزمول علم لکه ما دل لکه علا صلاح نفسک و از هر لکه فسادها الزمال علم لازمترین دانشها ما نسبت به هر علمی احترام غائلیم و مسلما به وسیله علم میکوشیم جهل را از بین ببریم جهل کشنده است نادانی باعث درجازدن انسانها می میشود جهل است که نمیگذارد انسان ها رشد کنند و جلو روند پس باید در صدد تعلیم و تعلم برآمد باید علم فرا گرفت باید برای عالم ارزش قائل شد باید شرایط تعلیم رو برای آنانی که علاقمندن فراهم کرد تا به کمک اونها بشریت رو از جهل در آورد ولی از دید امام کاظم علیه السلام و طبق این حدیثی که قرائت کردم الزم علم لازمترین ترین علم ها برای انسان کدام است اگر هر علمی خوب است و حتی لازم است لازمترین ترین کدام است از دید امام کازم علیه السلام الزم علم لکه مادل لکه علا صلاح نفسک لازمترین ترین و آگاهی ها و علم اون دانش و علمی است که شما را دلالت کند، راهنمایی کند، آگاهتون بسازد نسبت به اموری که باعث اصلاح نفس شما می شود و از هر الک فسادها و اظهار دارد، آشکار کند، بشناساند چه اموری نفس ما را به فساد و تباهی میکشاند. چرا این لازم ترین علم هاست؟ به جهت اینکه اگر نفس من فاسد شد سرچشمه فاسد است سرچشم فاسد شد اونچه از سرچشمه تراوش میکند فاسد خواهد بود ما باید ریشه یابی کنیم علت را بشناسیم لذا از علت آغاز میکنیم بدین جهت در قرآن کریم وقتی توجه میکنیم یکی از مهمترین عواملی که نفس را آلوده میکند به قول امام کازم علیه صلات و سلام الزمال علم لازمترین علمها این است که به شما بشناسانه چه چیزی نفس شما رو اصلاح میکنه چه چیزایی نفس شما رو فاسد میکنه و خراب میکنه از دید قرآن کریم که همین مطلب را میخواهیم از صحیفه سجادیه طبق توضیحات امام سجاد علیه السلام و سلام پی بگیریم یکی از مهمترین عوامل که نفس را آلوده می کند شیطانی به تعبیر قرآن نزع شیطان و نفوذ شیطان در نفس انسان است در سوره مبارکه اعراف آیه شماره دویست و دویست و خداوند مطلبی را به ما توجه می دهد که اینگونه گونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اما ینزغن نک من الشیطان نزغن فستعذ بالله انه هو آن علیم در این آیه شریف اگر انایت بفرمایید دو نکته بسیار دقیق رو در رابطه با این بحث خداوند به ما توجه میدهد یکی این که شیطان نزق دارد و اما ينزغن نکه من شیطان نزق نزق چیست که شیطان نزق میکند راقب در کتاب مفرداتش میگوید وارد شدن و مداخله در یک امری برای خرابکاری این نزقه مثلا اگر دو نفر با همدیگه مشغول صحبتن هم یا تصمیمی دارن میگیرند اقدامی میخواهند بکنن من وارد می شدم خدایی نکرده به قصد خرابکاری و عذیت کردن این دو نفر در فکرشون القای غلط میکنم در نحوه برداشتشون نفوذ میکنم مطلب رو وارونه جلوه می دهم این خرابکاری من در مداخله بین این دو فرد که اونها را به آلودگی، تباهی، اختلاف، درگیری یا حرکت ناسهی بکشانم، این عمل رو میگن نزقه در قرآن کریم سوره یوسف نقل شده وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام با برادران آمدند بعد از مدتها حضرت یوسف رو پیدا کردند حضرت یوسف در کنار پدر از گذشته خود خبر می‌داد من جمله این مطلب رو قرآن بیان می‌کند که حضرت یوسف به پدر چنین می‌گوید پدرم این تعبیر همون خوابی بود که من دیدم این مراحلی که من پشت سر گذاشتم من بعد ان نزق شیطانو بینی و بین اخوتی بعد از آنی که شیطان بین من و بین برادرانم نزق خرابکاری کرد اختلاف انداخت مداخله کرد شیطنت نمود پس نزق اون است که دخالت میکند تا شیطنت کند باز در کتاب لغت نزغ را به معنی نقص یعنی سیخ زدن و تازیانه زدن برای به حرکت درآوردن وقتی کسی سوار بر مرکبی است میخواهد مرکب رو در اون مسیری که خودش دوست داره به حرکت در بیاره یه تازیانهای یا سیخی به دست میگیره به پهلو یا اون مرکب میزنه وادار میکنه اونگونه حرکت کنن این رو هم در لغت نزق میگن قرآن کریم میفرماید شیطان میخواهد از شما سواری بگیرد شیطان میخواهد شما را در آن مسیری که او دوست دارد به حرکت بیاندازد برای این کار نزق میکند کند یعنی, چه؟ یعنی در درون شما وسوسه می کند نفس شما را به اونگونه در میآورد که خود میطلبد و این حالات نفسانی را که وساوس شیطانی به او میگویند باعث می شود نفس شیطانی شود وقتی نفس شیطانی شد طبیعتا اعمالی که از این نفس سر میزند به اختزای اون است که شیطان می لذا در قسمت اول آیه دویست از سوره اعراف حضرت حق میفرماید و اما ینزغن نکمن شیطان نزغن هرگاهی که شیطان می در تو اینجا گرچه روی سخن با شخص نبی اکرم است اما از این جهت که یعنی توی پیامبر این مطلب را به بقیه بیاموز شیطان دوست دارد در شما انسانه ها نزغ کند شما را تحریک کند در اون مسیری که خودش دوست دارد شما حرکت کنید این نکته اول نکته دوم که انشالله باید بحث بکنیم ولی فعلا بنده دارم چه می شود که نفس آلوده می شود و حرکت صحیح نمی کند اون رو بررسی می کنم. اما نکته دوم رو اشاره کنم فست به الله وقتی می بینید شیطانی همچه دشمنیه و میخواهد خواهد اینگونه در شما نفوذ کند و شما را به حرکت در مسیر های خود درآورد، شما چه بکنید به خدا پناه ببرید یعنی پناه بردن به خدا باعث می شود شیطان را دفع کند آیه بعدی آیه دویست و یک این مطلب رو باز اینگونه برای ما توضیح می دهد اِنَّلَّذِينَ تقوا به درستی که کسانی که تقوا پیشه کردن اِزَا مَسَّهُمْ تَاعِفُونْ مِنَشْ شَيْطَان وقتی برخورد می کند با ایشان شیطان تواف کننده یعنی این طائف من الشیطان شیطانی که همینطور دور دل و نفس انسان می‌گردد می می‌کند تا ببیند روزنه ورودی را می‌تواند پیدا کند وارد شود یا نه لذا کلمه طائف من الشیطان این نکته را در آیه بعدی برای ما توجه می‌بخشد همونگونه که شخصی اگر به یک جایی برخورد کرد مثلا منزلیست میخواهد وارد شود یه در ورودی داره نگاه میکنه میبینه در بسته است گاهی ناامید میشود بر میگردد اما اگر ناامید نشده مسر است که وارد این خانه شود هی اطراف این خانه میگردد آیا پنجره ای باز است؟ آیا روزنه ای وجود دارد؟ آیا از طریق پشتبام امکان رفتن هست؟ آیا از طرف حیات راه دیگری برای ورود هست یا نه؟ قرآن در آیه دویست و سوره اعراف میفرماید ش... شیطان طائف هست یعنی مرتب گرد قلب و نفس انسان تواف می کند و دست بردار از انسان نیست این یک نکته اما نکته مورد نظر بعدی اللذین تغو آنانی که تقوا پیشه کردن ازا مست هم تا افان منش شیطان. وقتی که برخورد میکند تماس میگیرد با اینها شیطانی که داره تواف میکنه دور دلشان تذکروا و هم مبسرون اینها چه میکنند؟ اینها اهل ذکر میشوند تذکر پیدا میکنند با تذکر به حضرت حق زمینه نجات از وسوسه های شیطان پس دو نکته رو در این دعایه شریفه ما در رابطه با بحثمون با عنوان مدخلی برای ورود به کتاب صحیفه سجادیه که میخواهیم بهره ببریم در این بحث توجه میکنیم یک نفس است که مصدر افعال انسانی است و نفس میتواند بیمار باشد میتواند سالم از دید قرآن کریم با توجه به این دعایه فعلا و انشاءالله در بحث بعدی باز از جای دیگر قرآن در تأیید این ارائزم استفاده خواهم کرد که پایه قرآنی این بحث اول مشخص و قوی گردد بعد از کتاب عظیم صحیفه سجادیه در طبیعین توضیح تفسیر این مطلب بهره بیشتر ببریم پس نفس می تواند بیمار باشد اگر نفس بیمار شد افعال زائیدهای از صاحب این نفس افعال بیمارگونه خواهد بود عاملی که نفس را بیمار میکند نزع شیطان است شیطان میتواند دسیسه کند شیطان میتواند تحریک کند شیطان میتواند مداخله کند و خرابکاری بسازد انسان باید این نکته رو توجه داشته باشه شیطان را دست کم نگیرد اما نکته دوم برای این که شیطان را از خود براند و دور کند و قدرت غلبه بر نزق شیطان را داشته باشد باید پناه به خدا ببرد متذکر گردد اهل ذکر باشد که این قسمت البته باید بعد مورد بحث قرار بگیرد الله در جلسه بعدی باز پایه قرآنی این مطلب رو کمی با هم بحث میکنیم اونگاه وارد کتاب صحیفه سجادیه میشویم برای بهرهمندی بیشتر نسبت به این مطلب و سلام علیکم